پیچی دیگه سه دو یک سه رادیو پیش سه رادیو پیش دهه نرات بنافشش بنافش آبیه نرات بنافشش راه راه این ریچارد مرد رویه هاشه مگه مرده هم مرد رویه دارن من خدا خبت کن.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 گلهای رنگ سرزد از خاکهای شب در جاده های عطر پای نسیم مندز رفتار هردم پی فریبی این مرق پر است نقشی کشد به یاری منقار بندی گسسته است خوابی شکسته است رؤیای سرزمین افسانه شکفتن گلهای رنگ را از یاد برده است. بیحرف حرف باید از خم این ره عبور کرد. رنگی کنار این شب بی مرده است.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 خزم خیلیم عربم یله اوبالیم از شما صح عالیو می بنده باغالیم همین بوده نه نخوا که تغییر کنم نخوا کفکار تو رو ت زنجیر کنم. تو تو سرم من همینه واقعام نخواد که بادمم ک اصلا سخت تا پایم دوبار از الیام اگه با دلم را میای با دلت را می آم. اصلا سخت تا پایم دوبار از الیام اگه با دلم را میای با دلت را میام ببین هررک دنیا رنگیملم رنگ خودم؟ هم. به غیر از رنگ خودم به دنیام رنگی نمیزنم خیزو ما رنگ خودمونه باشیم تو دنیا رنگی شد دور و برمون پر رنگای خوب پر از قشنگی شد اگه تو رنگ اون شید من رنگ تو همه رنگ میشیم دیگه کسی رنگ خودش نیست همه اصاده رنگ زدن میشیم از hey, hey. گیری نده به من به سیزه نشو بذار بزن تا خودم باشم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 حتی بدون این که مثلا سفید یخچالیش بشود کمی چک. یک خود سیاه سیاه سیاه. به چی نگاه میکنی تو گوشید؟ اینستاگرامم چی هست؟ یه جایی هست تو اینترنت که مردماتوش اکس ها مثل آلبوم عکس ما بس. شاید. حالا تو چی میبینی؟ این مرده رو؟ این کیه؟ صحابه این عکس دوستته این ریچارد برانسونه نه این صحابه این صفحه نیست صحاب این صفحه عکسشو گذاشته صحابشم دوست من نیست ریچارد چیچی چی؟ پس چرا عکسشو گذاشته چرا تو صفحه کسی هستی که دوستت نیست برانسون چون پاراشو نگاه میکنم حتی تو نقاش خوبیه جوابمو نددی چرا عکس این ریچاردرو گذاشته نمیدونم گفته این ریچارد مرد رویاهاشه مگه هم مرد رویاها دارن من چه میدونم او شی دست بسیاری در پنجره نور یاولی حاصل. تا واسه داشتی یا کوی. از از گل‌ها، از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 بیست بار سر امام حسین را می بوق زریم از سیاهی‌هایی که سوی جامعه می‌دهد بر انسان و از او یک موجود سر, تا سر سیاه و بی رحم یک دسته دیگر هم از سیاهی‌ها هست که یک میلیون بار خطرناکتر از هر نوع سلاح شیمیایی یا اتمی در دنیا است. و آن هم عقایدی است که قلیز شده‌اند به طوری که با اصل اعتقاد بسیار متفاوت و فرد مورد نظر خود را دایه دار و مجری این عقیده می‌شد. به طوری که به خاطر این عقیده به رسیده سیاه همه چیز و همه کس را قل و غم می کند این اعتقادات هم می تواند از روح سفیده آدم یک تالا سیاه بدون محبت بسازد و هنوز هم دلیلش کشف نشده است بعضی ها برای این اند که مکانیزم عمل و اصلش هم کشف نشده است در صورت مشاهده از این فرد تا چند صد میلیون کیلومتر دور شد دیگه چیزی نمیدیدم تموم راه و جون کندم تموم راه ترسیدم چرا غجادمون ماه منم با ما همراه هم نمیدونم کجا میرم ولی بارا همراه یه وقت صاحیه جاهای آدم چیزی نمیدونه یکی راه و یکی چامل دو راهی روبرومونه یه وقتی راضی از اینی که میبینی خطر کردی همیشه به سرفتنی یه جای خوبه برگردی چقدر که بیشتر در موردش بخوانیم و فکر کنیم میبینیم انسان همانقدر که در بچگی سفید و بدون هیچ فکر و نظر و سیاهی است در یک جای زندگیش مورد حجمه بالایی از اعتقادات و رفتارها و تفکرات قرار میگیرد که از او یک تابلوی جدید نقاشی میکنند تابلوی که هم با یک سطل غیر سیاه میشود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 و باز باید گفت که سالهای سال است که بهترین موضوع برای دانشجویان و استادان دانشکده و دانشگاه های علوم انسانی همین مسئله روح و فکر آدمی است و شاید اگر نبود نیمی از کتاب خانه های دنیا خالی میشون ای آمده از عالم روحانی طرد پیران شده در پنج و چهار و 6 و 7 مینوس ندانید از کجا آمده خوشبامس ندانید به کجا خواهی شما به اپیزود دوم مونولوگ تور از فصل دوم 18 برنامه گوش حالا چرا مونولوگ تور به دلایل فنی و غیر فنی رسیدم اپیزودی که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 یه روزی میرسه که همه اینا تبدیل میشه به یک کیف پر از خاطره که یک دو سه رمزشه و باقی ماجره هجده بنفش و غیر از فیسبوک و وبسایت سایت و اینستا از کانال تلگرام ما با آیدی رادیو هجده بنفش با هجده عددی گوش بدید و خیلی مهمتر از اون و خیلی راحت و آسون یه سری به سایت ویپ بزنید قسمت پاک ها و باز هم باقی ماجره در زم این آهنگ سیاه از امیر ازیمی اونقدی خوب بود که دوباره بعد صحبتان براتون پخشش میکنند من آرش بودم و اینجا رادیوهجده هجده بنفشی بود که صدای مهربونش همیشه باقی خواهد موند حتی اگر فقط یه نفرون رو بشنده مرسی از فتانا و و مونا و و سارا و خیلی های دیگه مهربون باشیم و شاد و تمام رو چیزی نمیدیدم تموم راه جون کندم تموم راه ترسیدم چرا غجادمون ماه منم با ما همراه هم نمیدونم کجا میرم ولی بارا همراه هم یه وقت یه جاهای آدم چیزی نمیدونه یکی را و یکی چامل دو راهی روبرون مونه. یه وقتی رازی از زینی، که میبینی خطر کردی همیشه به سرفتنی یه جای خوبه برگردی دنیا معلومه ببین جاده تهش چیش و کشق از دور معلومه تو میبینی کسی از تو داره دستی تکم میده همیشه لحظه یه آخر یکی راهو نشون میده یکی راهو میده یه وقتسای جا های آدم، چیزی نمیدونی یکی راه های کی چا دورا این رو به یه وقتی راض از زینی که میبیی خطر کردی همین شخصسه رفتننی یه جای خوب بررگ یه وقتسای جاهای آدم چیزی نمیدونه یکی را و کی چا دورا این رو به یه وقتی راضی از زینیشه میبیی خطر کردی همین شغس رفتنی یه جای خوبه برگردی